پس هشتم بخش دوم بیافش را ابر تییر فرا گرفت مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم. او هم از جایش بلند شد. آمد طرف من زیر بازوی مرا گرفت و گفت بفرمایید برویم خانم تشیف نمیآورند مادرم گفت نه من مرخص میشوم می شوم از مادرم خداحافظی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت هر به فرمایید بفرمایید می میکنم حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم. گفتم تیم خیلی خوشحالم. من جز این انتظار نداشتم. یکی از پیشخدمت ها را صدا زدم و گفتم قهوه و لیکور بیاورید به سالن. در سالن دیوار زلع شمالی تابلو بزرگی کار استاد آویزان بود. توجهش را جلب کرد و پرسید کاری کیست؟ گفتم کار استاد ماکان است. پرسید میشه نسیدش؟ گفتم نه همینطوری. روی سندلی راحت نشست، پاهایش را رو روی پایش انداخت، من قوطی سیگار را پیش بردم، یک سیگار برداشت، من هم یکی برداشتم، بلند شد که برید زد آتش را نزدیک صورت من آورد و گفت، آدم است پرسیدم کی؟ گفت همین نقاش، پرسیدم چطور؟ گفت هیچ، یکی نیست به او بگوید که مردک، بنشین کار خودت را بکن، تو را چه به سیاست؟ پیش خدمت قوری قهوه و فنجان های قهوه خوری و بطری لیکور و گیلاس های آن را رو روی میز کوچکی که صفعی از برنج قلم زده داشت گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم: "دلم میخواست کمی با شما تنها صحبت کنم." گفت: "خب چه بهتر. چه فرمایشی داشتید؟" گفتم: "راجب تقاضایم دیگر صحبت نمی کنم. شما که قول موافقت دادید. وقتی خواستید تشریف ببرید، میگویم که یادداشت کنید." گفت بلکه من نخواهم بروم گفتم نه تشریف میبرید با خنده پرسید اگر نرفتم چه؟ من هم با خنده جواب دادم اختیار دارید مملکت شهربانی دارد آن وقت پاسبانها را صدا میزنم قه قه خندید باریک الله خوب فرمودید پرسیدم تیم سر از کارهایتان راضی هستید؟ گفت میخواستید راضی نباشم؟ پرسیدم در پاریس راحت تر نبودید؟ گفت البته که آنجا بهتر بود تا من از قدرت و مقام خوشم می آید. پرسیدم دیگر می چه باشید؟ رئیس شهربانی یعنی پس از شاه همه کاره؟ گفت عوضای مملکت اینجوری نمی ماند. می همه کاره باشم. یعنی چطور می شود؟ گفت دنیا دارد رو به جنگ می رود. اگر می در آلمان چطور دارن تسلیحات می گفتم به ما چه؟ گفت به محصی اینکه تق و پوقی بلند شود، یارو دو پا دارد دوپ دیگر هم قرض می کند و شیخی را میبیند پرسیدم پس چرا آنقدر به او خدمت می کنید پرسید از کجا فهمیدید که دارم خدمت می کنم؟ گفتم می بینم که دارید مردم را اذیت می کنید کیس نداند که شما دارید مردم را بیخودی میگیرید گفت مثلا کی را گرفتم گفتم در این چند روزه اخیر تا آنجا که من سراغ دارم اغاً پنج نفر را دستگیر کرده اید گفت در یک مملکت 10 میلیونی بگزاده 15 نفر را بگیرن چطور می شود؟ ریافشا در کشید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم مادر یکی از اینها که گرفتار شده دو سه روز پیش به من متوسل شده بود و من تقاضای خلاصی او را دارم. پرسید اسمش چیست؟ گفتم محسن کمال. اخم کرد. دست انداخت و طرف لبش را گرفت و دو سه مرتبه انگشتانش را تا زیر چانه کشاند. آرام و ملایم گفت خانم نکند اینجا هم دارید از همان کارهایی میکنید که در پاریس بدان مشغول بودید پرسیدم مگر من در پاریس چه کار میکردم گفت چه میدانم؟ از همان روزنامه پخش کردن از همان کارهای بچه مچه ها گفتم پس مرا هم همین روزها میگیرند گفت نه شما رو توقیف نمیکنم. شما رو میگذارم تو یک صندوق درش درستش مهروموم میکنم و با هواپیما میفرستمتان به فرانسه گفتم بهتر نبود مرا میفرستدید پیش پدرم گفت نه آنجا از دست من در می رفتید. گفتم مگر شما باز هم خیال فرنگ رفتن دارید گفت شوخی به کنار راستش را بخواهید من موقتی در ایران هستم زندگی در ایران با این طرز بازی با طبع لطیف من سازگار نیست فایده زندگی در این شهر گن چیست اصلا من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم آن میهمانیها، آن شب‌نشینی‌ها آن زنهای آراسته آن دم و دستگار آدم باگذرا و بیاید فش های رکیک بشنود اینکه زندگی نیست پرسیدم مگر الراهت به شما هم فش میدهد گفت وقتی به رئسلو را فاش فش میدهد نوبت من هم خواهد رسید گفتم شما که اینجور حرف میزنید پس مردم زیر دست شما چه بگویند با عصبانیت گفت ای خانم، مردم؟ مردم کین؟ آخرینها منتالیتشان اینجور است از این بهتر چیزی نمیفهمند مثل اینکه که را از لجنسار بیاورید توی پر قوب خوابانید قرباقه توی لجن خوش است من طاقتش را نمی آورم اینجا هیچ روزی در امان نیستم هر روز ممکن است که خود من هم گرفتار بشوم. خیال می کنید که تبعید پدر شما به کربراکار آسانی بود مندت نمیخواهم گردنتان بگذارم توی نظمی یک ماش جاسوس بیشرف هستند و مرتب به دربار گذارش دروغ می دهند. نکته عجیبی است که چرا هیچکس متوجه این ای به بزرگ کار نیست؟ پانزه سال است که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش های دروغ می گردد؟ می بینن که کارشان پیشرفت نمی کند. با وجود این باز هم ادامه میدهند؟ چطور می شود کار کرد؟ گفتم تازه خودتان هم روی همان گزارش های دروغ دارید کار میکن گفت تا اندازه همینطور است که می گویید. گفتم تا اندازه چرا دیگر؟ همین محسن کمار را روی همین گزارش های دروغ گرفته اید. گفت نجان من. میانه دعوا نرخ معین نکن. اینطور نیست. پسرک داشته بیانیه پخش میکرده. گفتم آخر برای یک بیانیه که آدم را دستمند قپانی نمیزنند. پرسید این را از کجا می دانی؟ آن وقت کمی محکس کرد. سیگار آتش زد و گفت. تلفنتان کجاست؟ گفتم توی هشتی بادا. پرسید چه ساعتی است؟ ساعت دهانیم و نیم گذشته است. کمی دیر است و الا همین الان دستور میدادم که محسن کمال را مرخص کنم. فردا او را مرخص خواهم کرد. اما بدانید که با این کار به خودم صدمه میزنم. گفتم یقین دارم که کار نیکی میکنید و اجرش را از خدا خواهید گرفت. گفت این حرف را از خانم جانتان یاد گرفته اید؟ مثل اینکه یک عمر سر جا نماز نشسته اید. الان من قریب دو ماه است که در شهر بانی دارم کار می کنم. بیش از یک سال دوام نخواهم آورد. تا آن وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت خب کاری که زندگی من تأمین شود و دیگر کسی نتواند به من صدمه ای بزند. پرسیدم فایده اش چیست؟ گفت آینده را باید در نظر بگیرید. همینطور که گفتم دستگاه در حال زوال از هم پاشیدگی است. در موقع جنگ دیگر مردم را به زور نمی نگه داشت. خواهی نخواهی آزادی به مردم خواهند داد و من اگر صدمه ای به این دستگاه بزنم و بتوانم فرار کنم سرمایه برای آینده خودم درست خواهم کرد. گفتم در این صورت حتما انگلیسی ها را هم با خودتان موافق کرده اید. گفت حالا با آنها کاری ندارم اما هنگام مباده آنها مجبورن خودش را به سراغ من کی از من بهتر؟ من پرچمدار آزادی خواهم بود خندیدم و گفتم خوب دوز و کلک را خودتان جور کرده اید گفت همه اینطور هستند هر کی به فکر خیش است. شوخی به کنار این را میخواهم جدی به شما بگویم امیدوارم تا آن وقت تصمیم قطعی خودتان را گرفته باشید من تا مدتی که در اروپا هستم یک زندگی شاهانه برای شما ترتیب میدهم وقتی این به هم خورده به ایران برگشتم آن وقت اگر موفق شدم شما همه کار هستید. تمام قدرت و ثروتی که روز به روز روبه فونی است در اختیار شما خواهند بود. راه شما به تمام محافل و مجامع اعیان اروپا باز است. شاهان و راهسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید. اگر هم موفق نشدم تا روزی که از ایران بروم آنقدر سرمایه می توانم دوخته کنم که شما اگر یک عمر هم در اروپا غرق تجم باشید، باز هم کم بود احساس نکنید. این دره باغ سبز نیست که به شما نشان میدهم. این را میگویم تا بدانید که شما با من زندگی مرفهی خواهید داشت. خب دیر وقت است. از خانم جانتان خداحافظی کنید. امیدوارم که به زودی شما را ببینم. هرچه زودتر به من جواب بدهید. میخواست دست مرا بفشارد فشارد و خداحافظی کند. دستش را نگه داشتم و گفتم، کمال را فرد و مرخص کنید مادرش خیلی خوشحال خواهد شد گفت مادرش که اینجا نیست چرا بیخود خود میگویی؟ شما خوشحال خواهید شد برای من کافی است دختر جان از شما فقط یک خواهش دارم اگر درباره این بچه مچه ها چیزی میدانید به من بگویید من به آنها صدمه ای نمیزنم اما بساتشان را جمع میکنم در این صورت هم برای شما بهتر است و هم برای من. بلاخره دیر یا زود من کلک همه را میکنم کنم. بساتشان را ور می چینم. زیرا این خودش یک کلید موفقیت من است. وقتی به علا حضرت حالی کنم که در عرض پنج ما این بچه بازی را از بین برده اطمینان او به من بیشتر می شود و من آسانتر میتوانم می توانم ضربه خود را به او وارد آورم. این را بهتان بگویم. اگر از اول می دانستم که آزادی یکی از بچه‌های بازیگوش رو از من می‌خواهید به این آسانی موافقت نمی‌کردم. ابدا خیال ندارم که منت سرتان بگذارم. نه این اخلاق من نیست. اما جدا و سمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از این گونه خواهش‌ها از من نکنید. مگر اینکه همه اصرار را به من بگویید و من بساطشان را ورچینم در هر صورت از من تقاضایی نکنید که مجبور شوم جواب رد بدهم. آن هم به کسی که میل دارم تمام خواهش هایش را برآورم چون من یقین دارم که شما نمیخواهید به خود من آسیبی برسد و انجام این گونه خواهش ها مثل این است که بخواهید زیرا به خود مرا بزنید مرحمت شما زیاد از خانم خداحافظی کنید اگر به آقا جانتان نامه نوشتید از قول من سلام برسانید و بگوید هر کاری داشته باشد انجام خواهم داد پیش خدمت را صدا زدم دستور دادم که شوفرش را خبر کنند او را تا دم در مشایعت کردم و باز به سالن برگشتم. روی صندلی راه لم دادم. یک گیلاس دیگر لیکر سر کشیدم و آرام در فکر فرو رفتم. آقای نازم، شما خوب می دانید که من چه فکر کردم؟ دیگر خواندن پایان داستان سهل است. آیا شیطان به جلد من رفته بود؟ تناسایی، شوق تجمل خوشگسرانی؟ سیواحی های پاریس و رم زندگی متنوع در اروپا تئاتر کنسرت و هزاران سرگرمی دیگر اینها مانند بخارهای کیفاور مرا گیج کرده بودند نه اینطور نیست اگر این امتیازات صد برابر هم میشد در مقابل یک آن پرواز بر بالهای گشوده عشق آن هم عشق بیری که من به استاد داشتم هیچ بود چطور من می توانستم با این مرد که همه چیز را از دریچه چشمهای خودش قضاوت می کرد و آنجایی جایی را که خودش ایستاده بود مرکز زمین و زمان و عالم لایتناهی میدانست. زندگی کنم. چطور من می توانستم با چنین مردی زندگی کنم که وجود مرا نمیخواست؟ و فقط نام خانواده بازار مرا دوست داشت و آن را هم میخواست وسیله تازه برای ترقی و تعالی خود کند؟ فکرش رو بکنید. مرا میخواست به زنی بگیرد که در مهمانی های درباری اروپا دست زیر بازوی او اندازم تا او بتواند همه جا ببالد که خوشکلی زن را دارد مرا میخواست به زنی بگیرد تا تشنگی جا او تسکین یابد میخواست شوهر من بشود تا خانه ام داشته باشد بر تخت راحت بخوابد غذای لذیذ بخورد و آسایشش تأمین گردد تازه در مقابل به من چه میداد؟ پول، خانه، زندگی، مسافرت به فرنگ. اینها را خودم هم داشتم. من زیبا بودم و با زیبایی می توانستم بیش از اینها هم به دست بیاورم. تازه این دل خوشگیده و شومش را هم نمیخواست به من ببخشد. یک زن برای تأمین زندگی داخلی و مراقبت بچه هایش میخواست. و زنهای فراوان برای تسکین تمناهای گندیده جسمش. یک چون این زندگی را به من پیشنهاد میکرد. یادتان نرود من از زندگی پر از تفریح و, و نوش فرنگ بیزار شده بودم فقط برای اینکه آنجا مرا همه دوست داشتند و من کسی را پیدا نمی کردم که شایسته عشق و مهربانی من باشد چرا در فرنگستان تنفر به من دست داد زیرا ناگهان خود را بیکس و بیچاره احساس کردم دیدم هنر من نیستند و این تنها تسلی خاطر من هنر نقاشی نگاه پر از لبخند و آفتابی خود را از روی من برگرداند و حال در ایران کسی را پیدا کرده بودم که هم هنرمن بود و هم من دوستش داشتم. همینطور که روی صندلی را لمیده بودم، آتالیه او در خاطرم نخش بست. دیدم زیباترین جاهای دنیا برای من آتالیه او است. آنجا که آدمهای مثل من نشستند و دور تا دور همه به من نگاه می‌کنند، کنند. او جای امنی بود. هیچ کس به من به چشم هیز یا از روی کین توزی نگاه نمی کرد. مردمی که آنجا زندگی داشتن آنهایی بودن که من در عالم تصور خود جلوه میساختم می زاختم. اما نمی آنها را در قالب زنده و جاندار در آورم. در آتالیه او عوالمی که دل من شیفته ادراک آنها بود، شکل به خود گرفته بود. چقدر من از خنده دخترهایی که بلال گاز میزدند خوشم میآمد آمد. درویش مرحب با چشمهای درشت عبروهای پر پرپشتش، پیراهن سفید و عبای ابریشمینش مارگیری که میخواست سر ما را گاز بگیرد شاعری که روی تخت پوس کنار منقل نشسته بود و داشت چای میریخت اینها همه برای من آشنا بودند هر کدام را رو روزی در زندگی خود دیده بودم ناگهان قیافه پریشان و استاد در نظرم جلوهگر شد احساس کردم که منتظر من است و من باید به او کمک کنم یاد حرف سرتی افتادم دیدم در خطر است و هر آن ممکن است که حادث برای او رخ دهد گفته بود آدم نارااحی است میخواستم فوری به خانهاش بروم اما دیر وقت بود لازم بود که برای نجات و استاد نه برای مبارزه ای که او در پیش داشت احتیاط کنم دیگر حالا پس از این ملاقات با سرتیب پس از آنکه تقاضایی به این مهمی من مورد اجابت قرار گرفت واضح بود که من باید جان و استاد را از بلایی که دور سر او پرپر میزند حفظ کنم ساعت یازده شب بود از یازده هم گذشته بود به خانه ی استاد تلفن کردم هرچه زنگ زدم کسی جواب نداد ممکن بود که خودش خانه نباشد. او گاهی شبها دیر وقت به خانه میامد گاهی دیر وقت به گردش میرفت اما چرا آقا رجب جواب نمیداد؟ دو سه بار تلفن کردم اما کسی جواب نمیداد ترس عجیبی به من دست داد یقین کردم که حادسه باید در آن خانه اتفاق افتاده باشد ناگهان صدای در خانه آمد دلم هر ریخ با این این وقت شب پرسیدم کیست معلوم شد که پیش خدمت های هتل دارم می روند آیا استاد را گرفتند بعید نبود از آنچه که سرتیب می گفت باید دیر یا زود چون این انتظاری را داشت شکی نیست که شهربانی رد پایی پیدا کرده بود کوشیدم حوادث را دنبال هم حلق حلق زنجیر کنم چند روز پیش دو سه نفر را هنگام پخش بیانیه گرفته بودند. محسن کمال را توقیف کردند. از اون نشانی خانه ای را می‌خواستند که در آن پولیکوپی و اوراق چاپ وجود دارد. رئیس شهربانی استاد را مرد ناراحتی می‌داند و می‌گوید: کلک همه را می‌کنم. این بساط را ور می‌چینم. آیا این اعلام خطر نبود؟ کاش میشد همین امشب استاد را خبر کرد. کم کم خستگی‌های روز دوندگی های و های پذیرایی و کیف یک گیلاس ویسکی و لیکور مرا داشت به حال می‌کرد. مانند آدم‌های تبدار در زانوهای خود احساس درد کردم و آشفته و ناراحت خوابیدم. صبح روز بعد به استاد تلفن کردم. استرا به من بیهوده نبود. پرسیدم دیشب چرا کسی پای تلفن جواب نمیداد. گفت کسی نبود جواب بدهد. پرسیدم رجب کجا بود؟ گفت روز عصر او را گرفتند. گفتم آخر چرا؟ گفت معلوم نیست زبانم بند آمد او حتما احساس کرد اما خودش رو نباخت برای دلداری من گفت حتما چیز مهمی نیست یقینا مرخصش میکنن گفتم فرهاد میرزا رو امروز مرخص میکنن من الان میایم پیش شما گفت خواهش میکنم تا وقتی که به شما دستور ندادم پیش من نیایید گوشی تلفن را بگذارید زمین گفتم آخر من با شما کار دارم گفت میدانم. اما همین است که گفتم به هیچ پیش من نیایید خداحافظ فرنگیست گوشی رو گذاشت و رفت من مدتی آن را در دست نگه داشته و سرم را به دیوار تکیه داده بودم قسمت نبود که دیگر او را ببین